با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی از سری داستان های کتاب مردی که نمیخواست بمیرد با داستانی در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست دیو راشمون. در زمان بسیار دور مردم کیوتو از دیو وحشتناکی میترسیدن که گفته میشد شبا دروازه راشمون رو در اختیار میگیره و هر کی از اونجا بگذره رو می دوزده. و قربانیایی دزدیده شده رو هرگز دیگه کسی نمیدید. به خاطر همین گفته میشد که اون دیو آدم خاره و فقط به کشتن قربانیاش رضایت نمیده. همه مردم اون شهر و اطراف اون، در وحشت به سر می و بعد از غروب آفتاب کسی جرأت نمی کرد که به دروازه راشمون نزدیک بشه در همان زمون سرداری به نام رایکو در کیوتو زندگی می کرد که به خاطر دلاوری و سلح زبان زد بود کمی قبلتر از اون اون به اویاما حمله کرده بود دسته ای از دیف ها رو تسخیر کرده بودند و خون آدم ها رو مثل شربت می نوشیدن همه اون دیوها رو از اونجا فراری داده بود و سردسته اونها رو سرباریده بود همراه این جنگجوی بزرگ و شیردل همیشه دسته ی از سوارای سلحشور و وفادار بودند که از بین اونا پنج سوار از بقیه بیباکتر و شجاتر بودند. یه شب این پنج تا پهلوان دور هم جمع شده بودن و جشنی گرفته بودند که هوجو پهلوان اول به بقیه گفتش که آیا داستان به گوش شما هم رسیده که هر شب بعد از فرود اومدن آفتاب دیوی به دروازه را شما میاد و هر کی که از اونجا بگذره میدزده واتانا به پهلوان دوم گفت اینقدر علکی و بیهوده نگو هرچی دیو بوده به دست سرورمون رایکو در ایاما کشته شده اگه دیوی هم از اون کشتاره بزرگ جون در برده باشه همچین جرعتی نداره که خودش رو در این شهر نشون بده چون خوب میدونه که اگه سرورمون از حضورش با خبر بشه فورا اونو میکشه هوجو گفت پس خیال میکنی که من دروغ میگم واتانابه گفت نه من نمیگم که تو دروغ میگی ولی فکر میکنم قصه پیر شنیدی که ارزش باور کردن نداره. هوجو گفت پس برای اثبات این موضوع تو باید به اونجا بری تا معلوم بشه که این داستان راسته یا دروغ. واتانابه که نمیخواست دوستاش خیال کنن که اون ترسیده به سرعت جواب داد که بله البته من همین الان به اونجا میرم. با فوری آماده رفتن شد اون شمشیر بلندش رو به کمرش بست زره تنش کرد کلا خودشم گذاشت رو سرش و وقتی که آماده بیرون اومدن شد خطاب به بقیه گفت به من چیزی بدید تا بتونم ثابت کنم که اونجا بودم. یکی از مردا یه تومار کاغذی آورد دوات و جوهر و قلمم آورد و هر چهار نفر اسمشون رو روی کاغذ نوشتن. واتانابه گفت من اینو با خودم میبرم و روی دروازه راشمون آویزون میکنم تا فردا صبح که اونجا اومدید اون رو ببینید اما اگه بخت یارم باشه شاید بتونم دیوی بگیرم و دیگه نیازی به دیدن این نداشته باشید سوار اسبش شد و تاخت و رفت شب تاریکی بود حتی یه ستاره هم تو آسمون نبود که راه رو روشن کنه. بدتر از اون که طوفان و بارش سختی هم شروع شده بود. باد مثل گرکای کوستان زوزه می کشید. شب هر آدمی از فکر بیرون رفتن از خونش ترس و باهمه داشت. اما واتانابه جنگجوی پردل و بیپروایی بود. همچنین نام و آب رو در گروه این کار گذاشته بود. واتانابه به سرعت اسبش اضافه کرد و یارانش صدای سوم اسب اون رو تا زمانی که در بین زوزه باد گم شد میشنیدند. بعد از اون اونها در رو بستن و دور آتیش جمع شدن و همه اونها به این فکر میکردن که چی پیش میاد آیا رفیق شجاعشون با یکی از اون دیوای مخوف و ترسناک روبرو میشه یا نه. واتانابه به دروازه راشمون رسید. اما هرچی چشمنداخت دو تل تاریکی هیچ دیوی رو اونجا ندید. واتانابه با, با خودش گفت همونطوره که فکر میکردم اینجا هیچ دیوی نیست. فقط کافیه که این نوشته رو رو دروازه بچسبونم تا همه بدونن که من اینجا بودم. بعد هم راه خونه رو در پیش میگیرم و به اونها میخندم. اون قطع کاغذی رو که اون دوستاش روش امضا کرده بودن روی دروازه نصب کرد و بعد افسار اسبش رو گرفت که به خونه برگرده. هنوز راه نیفتاده بود که حس کرد کسی پشت سرشه. تو همون لحظه صدایی شنید که بهش فرمان ایست داد و گفت که در جای خودش بمونه واتانابه احساس کرد که کسی کلاه خودش رو از پشت گرفته ولی خب بدونه اون که بترسه و خودش رو ببازه گفت بگو که کی هستی و در تاریکی دست راست کرد که بدونه چه کسی یا چه چیزی کلاه خودش رو گرفته دستش به چیزی برخورد کرد که شبیه یک دست بود اما پوشیده از مو و به یک ستبری تنه درخت بود با تنابه فوراً فهمید که اون دست دسته دیوه پس به سرعت و چاب و کی شمشیرشو از غلاف بیرون کشید و بر اون فرود آورد نهره بلندی به هوا برخاست و دیو در برابر جنگجو ظاهر شد چشمای واتانابه از حیرت و ترجب بازمونده بود دیو بلندتر از اون دروازه بود چشماش مثل آینه در برابر آفتاب می درخشید و وقتی نفس می کشید شعله های آتیش از دهنش بیرون می دیو سعی کرد دشمنش رو بترسونه ولی واتانابه خودش رو نباخت و عقب نرفت اون با تمام قدرت و توانش جنگید. اون دو زمانی طولانی رو به جنگ با هم پرداختن و عاقبت دیغ که فهمیده بود نمیتونه حریفش رو شکست بده و نه اونو بترسونه حتی ممکنه مغلوبش بشه فرار کرد. ولی واتانابه که نمیخواست بذاره دیو فرار کنه سوار بر اسبش شد و در پی دیو رفت. واتانابه صالح شور خیلی تند اسبش رو میتازون اما دیو تندتر میدوید اون حیولا کم کم از نظر ناپدید شد و گم شد و واتانابه ناامید شد و فهمید که هرچی چی بگرده بهش نمیرسه واتانابه به دروازه برگشت از اسبش پیاده شد اما یهو پاش به چیزی برخورد کرد و روی زمین افتاد خم شد تا اون رو از زمین برداره ولی فورا فهمید که پاش به یکی از دستای اون دیو برخورد کرده همون دستی که هنگام جنگ اون رو قطع کرده بود از به دست آوردن چنین غنیمتی خیلی خوشحال شد چون این دست بهترین مدرکی بود که نشون میداد اون با یه دیو جنگیده. پس دست رو از زمین برداشت و به عنوان نشان پیروزی راهی خونه شد و تنابه برگشت و دست رو به دوستاش نشون داد همه اونها اونو قهرمان گروه خودشون خوندن و جشن بزرگی به افتخارش برپا کردن مبارزه اون خیلی زود زبان زد شد و مردم از دور و نزدیک می اومدن تا دست دیو رو ببینن کم کم با از این وز خسته شد و فکر کرد که کاری بکنه تا اون دست رو در جای امنی نگه داره. چون به خوبی میدونست که دیو هنوز زنده است و یه روزی برای پس گرفتن دستش میاد. واتانابه خیلی فکر کرد و دستور داد که براش صندوقی از سختترین چوب ها بسازن و یه قفل آهنین به اون بزنن. اون دست رو داخل اون صندوق گذاشت درش رو محکم بست و اون رو در اتاق خودش نگه داشت. یک لحظه هم از صندوق قافل نمی و از اون پس صندوق رو برای هیچ کسی باز نکرد و دست دیر رو به کسی نشون نداد. مدتی گذشت. یه شب با تانابه شنید که در خونش رو کسی میکوبه. وقتی خدمت کار در رو باز کرد پیرزن محترم و مهربونی رو دید. از اون پرسید که کی و چی میخواد. پیرزن با روی گشاده و لبخند پاسخ داد که اون زمانی دایه ارباب اون خونه بوده و اجازه میخواد که اونو ببینه. خدمتکار پیرزن رو پشت در گذاشت و برگشت تا به اربابش بگه که دایه پیرش به دیدنش اومده. ماتونا به از اینکه پیرزن اون وقت شب اومده بود تعجب کرد اما وقتی به یاد دایه پیر و مهربونیاش افتاد احساس کرد که دوست داره اونو ببینه پس به خدمت کارش دستور داد که پیرزن رو نزد اون بیاره اونو از دیدن هم خوشحال شدند بعد از کمی تعارف و صحبت پیرزن گفت سر بر من خبر نورد دلینانتون با دیو دروازه راشمون اونقدر زبان زد شده و پیچیده که این دایه پیرتونم اون رو شنید آیا راسته که میگن شما یکی از بازوهای اون دیو رو بریدید اگه اینطور باشه که واقعا شما لایق و تحسین و افتخارید با به گفت، بله ناکامی بزرگی بود که نتونستم اونجوری که آرزو داشتم دیو رو اسیر کنم فقط یه دستش رو از تنش جدا کردم پیرزن گفت من به خودم میبالم که سرورم اونقدر دلیر بوده و تونسته دست دیو رو از تنش جدا کنه. هیچ شجاعتی با این مبارزه و جنگ شما قابل مقایسه نیست. و بعدم گفت سرور من تنها آرزوی من اینه که قبل از مرگم اون دست رو ببینم. با در پاسخ پیرزن گفت ای کاش خواهش دیگه ای می کردی چون نمی تونم این خواسته شما رو برآورده کنم. پیرزن گفت آقا چرا؟ واتانا گفت دیواجانه برای کینجویی جویی هستن. اگه من در صندوق رو باز کنم هیچ بعید نیست که دیر ظاهر بشه و دستش رو بخواد بدوزده و با خودش ببره. من دستور دادم یه صندوق بسیار محکمی بسازم و اون دست رو در اون صندوق نگه دارم. و با خودم عهد کردم که هر اتفاقیم هم بیفته اون دست رو به کسی نشون ندم. پیرزن گفت: بله احتیاط شما خیلی خدممندان است ولی به یادتون داشته باشید که من داعه روزگار کودکیتون بودم میتونم که خواهشم رو رد نمیکنیم. من وقتی از این مبارزه دلیران خبردار شدم نتونستم تا صبح سب کنم و فوری اومدم اینجا تا از شما بخوام که اون دست رو به من نشون بدین. واتانبه از خواهش پیرزن درمانده شده بود ولی از طرفی هم نمیخواست که اون صندوق رو باز کنه و دست دیو رو نشون بده. پیرزن گفت فکر میکنید که من جاسوس یا فرستاده دیو یا حتی خود دیو هستم؟ واتانبه گفت نه هرگز من چنین فکری نمیکنم. شما حتما دایه مهربان من هستید. پیرزن نالهکنان بازم گفت پسی که چرا از نشون دادن اون دست به من خود داری من تنها آرزوم اینه که یک بارم شده دست دیو رو ببینم. با تنابه نتونست مقاومت کنه و تسلیم شد و گفت باشه حالا که همچین آرزوی دارید دست دیو رو بهتون نشون میدم به دنبال من بیاید. و اون رو به اتاق خصوصی خودش راهنمایی کرد. پیرزن به دنبال اون رفت. وقتی اونها وارد اتاق شدند، با تنابه در و بست و به سمت صندوق رفت که گوشه اتاق بود. در اون رو باز کرد بعد به پیرزن گفت نزدیکتر بیا و درون صندوق رو ببین ولی نمیخواست که دست دیو رو از صندوق بیرون بیاره. پیرزن با هیجان گفت اون دست چجوریه؟ اونو دقیق و نزدیکتر ببینم و خودش رو نزدیک و نزدیک تر کشید تا درست در کنار صندوق قرار گرفت و به چالاکی و فرزی و تندی دست خودش رو به درون صندوق برد و اون دست رو برداشت و با فریاد ترسناکی که اتاق رو به لرزه انداخت گفت خدا رو شکر آقابت دستم رو پس گرفتم و یکباره باره چهره پیرزن مهربون به دیوی وحشتناک تبدیل شد. با عقب پرید و از شدت تعجب چند لحظه بی حرکت تو جاش موند. ولی وقتی دیو دروازه راشمون را شناخت تصمیم گرفت که این بار به زندگیش پایان بده. و در چش به هم زدنی شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و سعی کرد که ضربه به دیو بزنه با خیلی سریع عمل کرد اما دیو تونست که فرار کنه و به طرف سقف پرید تیرهای سخف رو شکست و مثل دود و مه ناپدید شد و اینجوری بود که دیو دست خودش رو به دست آورد و باهاش فرار کرد مرد پهلوان از خشم این ناکامی ناراحت شد و تنها کاری که ازش برمیومد اینکه این که دنبال فرصتی بود تا یه بار دیگه بتونه اون دیو رو به دست بیاره اما دیو دیگه همچین قدرت و جرعتی نکرد که به اون شهر برگرده امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت برده باشید سفر به دنیای پر رمز و رازه